مصنوی معنوی مولوی برنامه 173 وسوسه‌ای که پادشاه زاده را پیدا شد از سبب استغنای و کشفه که از شاه دل او را حاصل شده بود و قصد ناشکری و سرکشی می کرد. شاه را از راه الهام و سر خبر شد دلش درد کرد روح او را زخم زد چونان که صورت شاه را خبر نبود. الا آخره <تصفيق> چون مسلم گشت به بای آشراه از درون شاه در جانش جرا. قوت می خوردی ز نور جان شاه. ماه جانش همچو از خورشید ماه. راتبه جانی ز شاه بیندید. دم بدم در جان مستش می رسید. نکه ترسا و مشرک می خورند، زان غذایی که ملایک می خورند اندرون خیش استغنا بدید گشت تغیان ز استرنا پدید که نمن هم شاه و هم शहزادهم چون انان خود بدین شه دادم چون مرا ماه برآمد با لما من چرا باشم غبار را تبع؟ آب در جوی من است و وقت ناز ناز غیر از چه کشم من بینیاز؟ سر چرا بندم چو درد سر نماند وقت روی زرد و چشم تر نماند چون شکر لب گشتم آرز قمر باز باید کرد دکان دگر زینمنی چون نفس زاییدن گرفت صد هزاران جاج خواییدن گرفت صد بیابان زانسوی هرسو و حسد تا بدانجا چشم بد هم میرسد شهر که مرجع هر آب اوست چون نداند آنچه اندر سیل و جوست شاه را دل درد کرد از فکر او ناسپاسی عطای بکر او گفت آخر ای خس واهی ادب این سزای داد من بود ای عجب من چه کردم با تو زینگنج نفیس تو چه کردی با من؟ از خوی خسیص من را ماه نهادم در کنار که غروبش نیست تا روز شمار در جزای آن عطای نور پاک تو زدی در دیده من خار و خاک من تو را بر چرخ گشته نرد تو شده در حرب من تیر و کمان درد غیرت آمدن در شه بدید عکس درد شاه اندر وی رسید مرغ دولت در اتابش برتپید پردای آن گوشه گشته بردرید چون درون خود بدید آن خوشبسر از سیهکاری خود گرد و اثر آن وظیفه لطف و نعمت کم شده، خانه شادی او پرغم شده، با خود آمد او زمستی اقار، زنگو نه گشته سرش خانه خمار، خورده گندم و بیرون شده، خولد بروی بادیا و هامون شده، دید، کانشربت ورا بیمار کرد. زهر ما و منیها کار کرد. جان چون تاووس در گلزار ناز همچو جغده شد به ویرانه مجاز. همچو آدم دور ماند او از بهشت. در زمین میراند گاو بهره کشت. اشک میراند او که ای هندوی زاو شیر را کردی اسیر دم گاو کردی ای نفس بد بارد نفس به حفاظی با شه فریاد رس دام بگزیدی زهر هرس گندمی بر تو شد هر گندم او کاش دومه آمد هوای ما و من قید بین بر پای خود پنجاه من نوحه می کرد این نمت بر جان خیش که چرا گشتم زده سلطان خیش آمد و با خیش و استغفار کرد با عنابت چیز دیگر یار کرد درد کن از وحشت ایمان بود رحم کن کان درد بی درمان بود مربشر را خود مبا جامع درست چون رهید از صبر در هین صدر جست مربشر را پنجوو ناخن مباد که نه دین اندیشد نه صداد آدمی اندر بلا کشته بهست نفس کافر نعمت است و گمره است خطاب حق به اسرائیل که تو را رحم بر که بیشتر آمد از این خلایق که جانشان را قبض کردی و جواب ازرائیل حضرت را حق به ازرائیل می گفت ای نقیب بر که رحم آمد تو را از هر کعیب گفت بر جمله دلم سوزد درد لیک ترسم امر را احمال کرد تا بگویم کاش کی یزدان مرا در عوض قربان کند بحر فتا گفت بر کی بیشتر رحم آمدد از که دل پرسوز و بریانتر شدد گفت روز کشتی بر موج تیز من شکستم زمر تا شد ریز ریز پس بگفتی قبض کن جان همه جز زنی و غیر طفل زن رمه. هر دو بر یک تخته درماندند. تخته را آن موج ها راندند. باز گفتی جان مادر قبض کن. طفل را بگذار تنها زمر کن. چون ز مادر بگسلیدم تفل را خود تو میدانی چه تلخ آمد مرا. بس بدیدم دود ماتمهای زفت. تلخی آن طفل از فکرم نرفت. گفت حق آن تفل را از فضل خیش. موج را گفتم فگن در بیشهش. بیشه ایش. بیشه ریحان و گل پردرخت میودار خوش اکل چشمههای آب شیرین زلال پروریدم طفل را با صد دلال صد هزاران مرغ مطرب خوشصدا اندران روزه فگنده صد نوا بسترش کردم ز برگ نسترن کرده او را ایمن از صدمه فتن گفته من خورشید را کورا مگز باد را گفته برو او وز ابر را گفته برو باران مریز برق را گفته برو و مگرای تیز زین چمن ایدای مبار آن اعتدال پنجه ای بهمن بر این روزه ممال کرامات شیخ شیبان رائی و بیان معجزه هود علیه السلام همچو شیبان رائی از گرگ انید، وقت جمعه بر رعا خط می کشید. تا برون ناید از آن خط گوسفند نه درآید گرگ و دزد باگزند. بر مثال دایره تعویز حود، کندران سرسر امان آل بود، هشت روز اندر این خط تن زنید و از برون مصله تماشا می کنید. بر هوا بردی فگندی بر حجر تا دریدی لحم و عزم از هم دگر. یک گروه را بر هوا در هم زدی تا چو خشخاش استخوان ریزان شدی آن سیاست را که لرزید آسمان مصنوی اندر نگنجد شرح آن گر به این میکنی ای باد سرد گرد خط و دایره آن حود گرد ای طبیعی فوق تبع این ملک بین یا بیا و کن از مصحفین. مقریان را من کن بنده بنه یا معلم را بمال و سهم ده. آجزی و خیرک این از کجاست؟ عجز تو تابه از آن روز جزاست. عجزها داری تو در پیش ای لجوج، وقت شد پنهانیان را نک خروج خورهمان کین عجز و حیرت قوت اوست در دو عالم خفته اندر زل دوست هم در اول هم در آخر عاجز دید مرده شد دین عجایز را گزید چون زلایخا یوسفش وی بتافت از عجوزی در جوانی راه یافت زندگی در مردن و در مهنت است آب حیوان در درون ظلمت است رجوع کردن به قصه پروردن حق تعالی نمرود را به واسطه مادر و دایه در تفلی. حاصل آن روزه چوباغ عارفان از سموم و سرسر آمد در امان یک پلنگ تفلکان نوزاده بود. گفتم او را شیر ده تا ات نمود. پس بدادش شیر و خدمتهاش کرد. تا که بالغ گشت و زفت و مرد. چون فتا شد بگفتم با پری تا درآموزید نطق و داوری پرورش دادم مرو را زانچمن کی به در بگنجد فن من داده من ایوب را مهر پدر بهر مهمانی کرمان بی زرر داده کرمان را بر مهر ولد بر پدر من ایند قدرت ایند ید مادران را دعب من آموختم چون بود لطفی که من افروختم صد عنایت کردم و صد رابطه تا ببیند لطف من به واسطه تا نباشد از سبب در کشمکش تا بود هر استعانت از منش ورنه تا خود هیچ عذر نبودش شکوهت نبود زهر یار بدش این هزانت دید با صد رابطه که بپروردم ورا بی واسطه شکر او آن بود ای بند جلیل که شد او نمرود و سوزنده خلیل همچنان که این شاهزاده شکر شاه کرد استکبار و استکسار جا که چرا من تابع غیر شوم چون صاحب ملک و اقبال نوم لطفهای شه که ذکر آن گذشت از تجبر بردلش پوشیده گشت همچنان نمرود آن الطاف را زیر پا بنهاد از جهل و اما این زمان کافر شد و رحم زند کبر و دعوی خدایی می کند رفت سوی آسمان با جلال با سه کرکس تا کند با من قتال صد هزاران طفل به تلویم را کشته تا یا بدوی ابراهیم را که منجم گفت کن در حکم سال زاد خواهد دشمن بهر قتال هین بکن در دفع آن خسم احتیاط هر که میزایید می از خباد کوری او راست طفل وای کاش ماند خونهای دگر در گردنش. از پدر یابید آن ملک ای عجب، تا غرورش داد ظلمات نسب. دیگران را گر ام اب عب شد حجیب او زما یابید، گوهرها جیب، گرگ در رنده است نفس بد یقین چه بهانه می نهی بر هر قرین در زلالت هست صد کل را کله نفس زشت کافرناک پرسفه زین سبب می گویم ای بنده فقیر سلسله از گردن سگ برمگیر. گر معلم گشت، این سگ هم سگ است. باش زلت نفسهو، کو بدرگ است. فرض می آری بجا گر تایفی، بر سحیلی چون عدیم تایفی. تا سحیلت واخرد از شر پوست تا شوی چون موزه هم پای دوست جمله قرآن شرح خوابس نفس هاست بن در مصحف آن چشمت کجاست ذکر نفس عادیان کالت بیافت در قتال انبیا می شکافت قرن قرن از شوم نفس بی ادب ناگهان اندر جهان میزد لحب رجوع کردن بدان قصه که شاهزاده زخم خورد از خاطر شاه پیش از استکمال فضایل دیگر از دنیا برفت قصه کوتح کن که رشک آن غیور برد او را بعد سال سوی گور شاه چون از محو شد سوی وجود چشم میر رخیش آن خون کرده بود چون به ترکش بنگرید آن به نظیر دید کم از ترکشش یک چوبه تیر گفت کو آن تیر از حق باز جست گفت که در حلق او کس تیر توست افو کرد آن شاه دریا دل ولی آمده بود تیر اه بر مقتلی کشته شد در نوحه او میگیریست اوست جمله هم کشنده و هم ولیست. ور نباشد هر دو او پس کل نیست هم کشنده خلقو هم ماتم کنیست شکر می کرد آن شهید زرد خد کن بزد بر جسم و بر معنی نزد جسم ظاهر عاقبت هم رفته نیست تا ابد معنی بخواهد شاد زیست آن اتاب ار رفت هم بر پوست رفت دوست به آزار سوی دوست رفت گرچه او فتراک شاهنشه گرفت آخر از عین الکمال او ره گرفت وان ثوم کاهل ترین هر بود صورت و معنی به کلی او ربود. وسیعت کردن آن شخص که بعد از من او برد مال مرا از سفرزند من که کاهل تر است. آن یکی شخصی به وقت مرگ خیش گفته بودند در وسیعت، پیش پیش سه پسر بودش، چو سه سرو روان وقف ایشان کرده او جان و روان. گفت هرچه در کفم کالا و زر است، او برد زین هر سه کو کاهل تر است. گفت با قاضی و پس اندرز کرد، بعد از آن جام شراب مرگ خورد. گفته فرزندان با قاضی کی کریم، نگذریم از حکم او ماسه یتیم. سمعتاعه می کنیم. او راست دست، آنچه او فرمود بر ما نافذ است. ما چو اسماعیل زبراهیم خود سر نپیچیم ارچه قربان می کند. گفت قاضی هر یکی با عاقلیش تا بگوید قصه از کاهلیش تا ببینم کاهلی هر یکی تا بدانم حال هر یک بشکی عارفان از دو جهان کاهل ترند زان که بیشدیار خرمن می برند. کاهلی را کردند ایشان سند کار ایشان را چو یزدان می کند کاری از را نمی بینند آم می نیاسایند از کد صبح و شام هین زهد کاهلی گوید باز تا بدانم حد آن از کشف راز بی گمان که هر زبان پرده دل است چون به جنبد پرده سرها واصل است پرده کوچک چو یک شرحه کباب می بپوشد صورت صد آفتاب گر بیان نطق کاذب نیز هست لیک بوی از صدق و کذبش مخبر است آن نسیم که بیاید از چمن هست پیدا از سموم گلخان بوی صدق و بوی کذب گولگیر هست پیدا در نفس چون مشک و سیر. گر ندانی یار را از ده دله از مشام فاسد خود کن گله. بانگ هیزان و شجاعان دلیر هست پیدا چون فن روباهو شیر یا زبان همچون سر دیگ است راست چون به بد تو بدانی چه اباست از بخار آن بداند تیز هوش دیگ شیرینی ز سگباج ترش دست بر دیگ نو چون زد فتا وقت بخریدن بدید اشکست را، گفت دانم مرد را در هین زپوز، ور نگوید دانمش اندر سروز. واندگر گفت ار بگوید دانمش، ور در سخن پیچانمش، گفت اگر این مکر بشنیده بود، لب ببندد، در خموشی در رود مثل آنچونان که گفت مادر بچه را، گر خیال آیدت در شب فرا، یا به گورستان و جای سهمگین، تو خیال بینی اسود پر زکین دل قوی دارو بکن حمله برو او بگرداند ز تو در حال رو گفت کودک آن خیال دیوش گر این گفته باشد مادرش حمله آرم افتادن در گردنم زمر مادر پس من آنگه چون کنم تو همی آموزیم که چوست ایست آن خیال زشت را هم مادر است دیو مردم را ملقن آن یکی است غالب از وی گردد ارخسم اندک است تا کدامین سوی باشد آن یواش الله الله را تو هم زانسوی باش گفت اگر از مکر ناید در کلام حیله را دانسته باشد آن همام سر او را چون شناسی راست گو گفت من خاموش نشینم پیش او صبر را سلم کنم سوی درج تا برایم صبر و مفتاح الفرج ور بجوشد در حضورش از دلم منطق بیرون از این شادی و غم من بدانم کو فرستاد آن به من از زمیر چون حیل اندر یمن در دل من آن سخن زان میمنه است زانکه از دل به دل روزنه است. مر ورا گردن هم، مننت هم بر دل و بر تن هم. چون فتاد از روزن دل آفتاب، ختم شد و الله عالم به سواب.